یهو سوالی جواب اگر نه که الله شده ولی شونده هم یه حثه کجا است اینکه فقط خدا یعنی اینکه خدا دعوت میکن فقط بهشت هم... یه لحظه اجازه بدید آیه ۲ پ میفرید و الله و ید او ااددار سلام درست شد؟ این و الله ید او العلاددار سلام یعنی خدا فقط دعوت میکنه به بهشت آه؟ یعنی خ دعوت خدا منحصر است به بهشت چی میگم یعنی آه؟ یعنی خدا دعوت میکنه بهید این فائل معنوی یا ها فائل معنوی که گفتیم مثلا مثل اون هیه راودت می هیه می یعنی چی؟ یعنی مراوده منحصر شده در هیه اون هیه مقدم شده مؤخر در واقع فاعل بوده دیگه مقدم شده جزء مؤخر حصر میشه در مقدم اینجا دعوت به بهشت منحصر میشه در ذات اغلاس اله یعنی راه راست رو نشون دادن فقط کار خداست کار هیچ کس دیگری نیست و هدایت مومنان هم کاره بودوم یوم و نشه هم جمعیانصبح نقل وذین اشکن مکانکنتون و و زگیل خب ببین یوم نحشرهم هم اصلا قدامت نحشه هم نغول رو و زلنا این ف و ذل ت تحكید. یکی تاکیده یکی این هم که وقتی جابجا جا میشه کانال عوض میشه مزاربه مازی خواننده به خودی خود به قول رو توجهش به لفظ بگید بسیار زیاده و قال اشورا بله عادی زمان فعل چه فعلی رو تقدیر بگیریم که زمانش این بشه؟ متاشدی؟ اذکر یعنی یاد آورد خب من میگم به تونه یاد بیاورد پارسال سال را آه ولی اگر به شما بخواهم فعلی رو بیارم که این بشه زمان اون که بشه مفهول و فیل اون فعل در این زمان واقع بشه بشه مفهول و فیل و فعل چی ترتیر؟ مفعولون فی زمان فعله. اه. خب من اگه فعلی رو ترتیب بگیرم باید این زمانش بشه ولی مفعولون به اونیه که فعل برش واقع میشه فعل میتونه بر زمان قیامت باد من الان میتونم یاد بیارم قیامت را الان میتونم یاد بیارم دوران پیری هم را آه؟ میتونم این کار رو بکنم اما من نمیتونم الان یاد بیارم و یاد آوردنم در دوران پیرین باشه این ممینه خوب تمام بسم الله الرحمن الرحیم قل بسم الله الرحمن الرحیم قل حل من شرکائكم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق افا من یهدی الالحق احقا یتبعه امن ام لا یهدی الا این یهده فما لکن کیبت هکمون استدلال کرد. ماحصل استدلال اینه آقا این های شما میتونن ما ازشون یه چیزی بپرسیم مسیر رو نشون بدن ها میتونن یعنی اصلا این حال ها مسیر،, مسیر نشون بدن راه رو به ما نشون بدن، آدرس بدن، میتونه؟ اصلا نمیتونه. پس اونا چیزی ازشون بر نمیاد. قل حل من کم من کم خبر مقدمه. من يهدي من متقدي مؤخره. آیا بعضی از شرکای شما، کسانی از شرکای شما کسی هستش که من تحبیر کرد من برای زبل اغوره ولی چون اینها ها شرک خدا می دونستن به بگی من میشه به الازینه میشه مشخص شده نه؟ قول حل من شرک من یعنی الازینه یهدی الالحق یهدی فقیق زمیر فایلش الالحق متعلق به یهدی آیا از شرک های شما کسی هستش که هدایت کند به سوی حق هدایت کند چه کسی را چه کسیش مهم نیست آه؟ خود شما رو آیا کسی هستش که از اینها راه حق رو نشون بده اصلا از ازش بپرسیم این مسیری که میگن این اعتقاداتی که میگن درسته یا غلطه بتونه جواب بده بتونه بگه این حل اینجا استفانه چیه استفهام انکاریه آه نیست حلم این شرکای شما آیا شرکای شما یه چی خصوصیتی دارن؟ یعنی چی؟ یعنی ندارن؟ یعنی لیسم این شرکای کن من یهدی الالحق الحق یعنی اون راه درست خلاصه چیزی که بگید ثابته قل یعنی شرکای شما راه نشان بده بگی نیستن خدا باید هدایتگر باشه خدا باید مسیر نشان بده باشه اینا اون کاره نیستن قل بعد خودش جواب میده ببینید توی آیات قبل توی آیات قبل یه تیکشه بود درست شد که خداوند میگفت اینو بپرس اونا هم جواب میدن مثلا آیه سی و ببینید گفت قل من یرز من از سماعه ولعرز اما من یمل کستم اول ابسار و من یخرج الهی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الام درست شد گفت رو بپرس بعد گفت فسیغولون یعنی اگر اینو بپرسی اینا بگیر جواب خواهند داد یعنی انسالت و مهم فسیغولون الله در یعنی این کار رو خداوند انجام میده یعنی الله و یفعه این اینو کارهای خداست درست شده نه بعد گفت بهشون بگو بچه آدم نمیشید افلا تتقون حالا که خودتون میگید پچه آدم نمیشه بعدم توضیح داد فضالکم الله رب بکن و حق فمازا بعد الحق الا زلال یا حق است یا زلال است دیگه وسط بگید ندارد فعنات اصلاف اینا رو دیدین همه رو تو اینجا طرف های مقابل در مقابل سوال جواب نمیدن نگاه کنین قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعيدو قل الله ببین قل الله جواب نمیدن متوجه چی میگم بعد خدا میگه تو جوابشون رو بده میگه بگو شرکای شما یبدع الخلق ثم هستن میتونن خلق رو آفرینش رو شروع کنن بعد هم بگو آفرینش رو اعاده کنن اعاده رو آورده تو کار واسه خاطر این که بگید موضع بحثه چون اونها بیشتر روی اعاده بگید حرف داشتن رو معاد بعد میگه بگو قول الله و یبدعو ببینیم الله و یبدعو همین حسری کلام گفتیم ابداع و اعاده آغاز و انتهای آفرینش الله یبدع الخلق اسمی ویدو فانا توفق گرفتی یعنی چه فرقی داره اونجاها اونها پاسخ میدادن اما اینجاها حاضر به پاسخ نیستن مثل کسی که استدلال یک نفر که محکمه خیلی سخته طرف مقابل حاضر به جواب گفتن نیست بگو فقط خداست دهنتون ده بسته مود در مقابل استدلال نتونستی حق بزنید خیلی محکم بود خداست که فقط میتونه آفرینش رو آغاز کنه و آخرینش رو عاده پس چرا شما دارید گول شیتون رو میخورید و اینطوری از راه حق برگردان نمیشید و انا توفه کن مرحله دوم باز میفرماید قل هل من شرکای کن من یهدی حق باز جواب نمیدن اونا چی بگن؟ هل من شرکای کن من یهدی الالحق؟ الحق مزاره آورده ها یعنی کسی هستش که بشریت رو ها هدایت به راه راست کنه؟ تدبیر کنه؟ قل باز با شکل هست قل الله و للحق جواب نمیدید به دلیل اینکه بگید خودتون میدونید الله و یهدی هدایت به حق منحصر در خداست خالق هستی مدبر هستی یهدی در هم. بعد نگاه کنید یه چیز خدمتون بگم ماده ی حدا و یه... یهدی که مزارشه این هم با لام متعدی میشه هم با الان خدا اینجا از هر دو استفاده کرده یاد اونو گفتم که این تنوع در عبارت بگو خیلی زیباست یهدی الحق یهدی بگید للحق متوشد یا دومش رو دوبامشو با اله برمیداره یا با لام و گاهی اوقات هم بدون اله و لام برمیداره مثل اهدنا از مستقیم اهدنا از سرات المستقیم نشد یا شد یعنی ماده هدا یهدی یه مقبولش رو حتما بر میداره حدهی توکه مقبول دوبومش رو با اله بر میداره حدهی توکه علت تریق گای با لام بر میداره حدهی که لت تریق گایی اوقات بدونه اله و لام حدهی توکه شد استعمال این رو از ذنباقتی تمام شد بعد میفهماید افا یهدی حقه احق و انیتبه امن لا یهدی امن لا یهدی الا انیهده این افمن همزه استفامه ها اون فافای نتیجه است حالا که ما بهتون گفتیم این بوتاتون میتونن ما رو به راه راست دایت کنن شما هم گرفتید چون میدونستید جواب نمیتونید بدید ما خودمون جواب میدیم فقط خداست که راه راست رو نشون میده درست؟ بعد میگه بنابراین فر امن یهدی الالحق محمزه استفخانه وفا بگید فای نتیجه مقدم شده چون صدارت تام داره آیا کسی که یهدی الالحق که یهدی الالحق کی بود؟ خدا بود الله و یهدی الالحق این نتیجه گیدی نسبت به بحث دیگه آیا کسی که هدایت به حق می کند احق و انیتبه این احق ماده حق با با متعدی میشه یعنی احق و به انیتبه حس فهر قبل از انا انه چیه؟ قیاسیه یعنیتبه منصوب به نزل خافظه برای احق آیا من یَهدی الالحق یعنی الله آیا خدا شایسته به تبعیت است شو؟ ام ام چیه؟ بگی ام متصل است دیگه آه؟ یادتون نیست ام متصله ها مثل اینکه میگه فرض کنید که عن زیدون قائمون ام بگید امره این یعنی الان زید میشه چی مبتدا امر میشه خبر چی قائم میشه خبر امر عذ میشه به جای بگید زید آیا زید قائمه یا امر اینو بهش میگن عمه بگید متصله که حرف عطفه عطف میکنه برای تصوورم یعنی سوال از مفرد رضا جوابش هم نیست جوابش چیه؟ یا باید کنی زیدون یا بگی امران تو برامن درست شده نه؟ ها؟ انتوم اشد و خلقن ها؟ انتوم اشد و خلقن هم سما او درسته؟ آیا شما خیلقتتون بگید سختره یا آسمان ها انتون با از سوایه شوار تغییر کنه اینجا هم میگه امن امن اون فا فای نتیجه است در نتیجه امن یهدی الالحق یعنی الله احقو احقو به چی؟ شایسته ترست به چی؟ بلتباه آیا خدا شایسته ترس به تبعیت؟ درست امن یا کسی که الان من اول بعد از افمن اون مبتداست، افمن من است یهدیل الحق سلشه احقو خبره درست شد؟ احقو چیه؟ خبره به تبع متعلق به احقوست به تبایی بعد احق همیشه چیه؟ بگیدی احقیه افعال و تفضیله خبره همیشه افعال و با بایه بگو من میاد دیگه وقتی که الفلام نداره اضافه نشده من داره درست شد اینجا نگاه کنید امن ام لا یهدی اون منه نیست یعنی اینطوری بوده به ان یوتبه من لا یهدی من. یهدی للحقه یا الالحقه یعنی الله احق کو، بل جای جایه و سبر گذاشتم بل اتباع ممن لا یهدی الالحق این لا یهدی الالحقی بوده بطقای اونا بود دیگه بگه آیا خدا شایست دست به طبعیت کردن از این کسانی که هدایت نمی عم بگید بگیر من این احقو به انیوتب ام من لا یهدی من میخوام این عرض بکنم خب که اون من این وسط چی شده بگو افتاده نگی مده مثل الله ها اکبر آه؟ اینجا ا انتم اشد خرقا ان السماء درست شد شده ذکر نشد عفمن یهدی الالحق اعحق بالابتدا بالاتباع اما من لا یهدی به قرینهی اما لا یهدی افتاده دیگه بعضی دیگه میگن اینجا نیازی به این نیست ببینید نیازی به این ممن لا یهدی نیست این نیازی نیست چون احض به معنای هدیه، حقیقه حقیقه چی؟ شایسته نمیخواد بگه شایسته تر یه نکته جالب بهتون بگم نمیخواد بگه شایسته تر است تو اگر بگه شایسته تر است یعنی اون لا یهدی هم شایستگی دارد گرفتی نه اینجا اصلا منی در کار نیست اینجا من هست هم دو مشهد دو سما هر دو شدیدند ولی یکی شدیدتره درست شد نه مشفق شد درست نه یعنی اشد خرقا من السما ام السما اینجا یکی هست یعنی شما خلقتتون شدیدتر است از آسمان یا آسمان شدیدتر است از شما آها اونجا حقیق هستش احق به معنای چیه بگید به معنای صفت مشبهه هست اصلا به معنای افعل تفضیل بگید نیست این نیستش که آیا خداوند شایسته خداوندی که هدایت می کنن شایست به حق میکنه شایسته ترس به تبعیت یا کسی که آه شایستهتر به معنا نداره یعنی آیا خدا شایسته تبعیت است یا کسی که بگو هدایت نمیکنه بود خدا شایسته است یا بت من خدا شایسته ترست بگو یا بود چه اگه بگی شایسته تر بگو آه یعنی اون هم شایستگی رو دارد اما اینجا نه اینجا افعال و خیلی جا هستش که افعال و تفصیل معنای تریت بگید نداره مثل الله و علم از حیست سالته یعنی اللهو و یعنی الله و علم یعنی آلمون نه اینکه الله اعلم و یعنی کس دیگری هم هست عالم از خدا عالم تر است اینجا اصلا تکه این به من لا لازم نداره میشه ام الله حقیقون به افتباه ام درون شد من لا یهدی یعنی هر میگه آن آران نتیجه بگیرید خدا شایسته تر از آدم دنبالش راه بیفته راه ازش بپرسه یا بگید بوتان نگرفته چی شد؟ خدا شایسته تر از آدم دنباله او رو بگیرد و راه را ازش بپرسه یا بگو بوتان نشد؟ چرا بسندتان یه خیلی سواتش میاد که چرا یک کلمه به کار برده نشده که همین معنی همین گوه بده خب همین تفکر رو داره دیگه پیچه در کلام، پی... اصل خصوصیت زبان عربی، اینو سوال قشنگیه. اون سخن زبان عربی، اون نوع ایجاد ایجادکنندش تفکره. یعنی استعمال یک لفظ در یک جای دیگه به یه شکل دیگه، درست شد؟ در صورتی که جابجاست. این مجاز، اینو بهش مجاز در کلمه. یعنی افعل التفضیل مجازا به جای بگید وصف آمده این مجاز در کلمه اولین چیزیه که ایجاد میکنه تنبه به اون کلامه تنبه به اون کلامه یعنی به میکنه یعنی اگر حقیقن گفته شده بود شما این تنبه رو بگید نداشتید چون خداوند بعدش میگه قبلش میگه میگه اینا هیچ کاری ازشون بر نمیاد خب کسی که هیچ راهی رو نشون نمیده چجوری ازش توهیت کنیم شایسته باشد که تبعیت از خدا بشه شایسته تر آه؟ خدایی که داره میگه فعنات و افکون فعنات و سرفون شما دارید بیرید پس چطوری به گفته باشه که تبعیت از بودها بگید تر از تبعیت از خداست همچی چیزی با کرینه شما کلمه ای رو جایی کلمه دیگر ببرید بگید خودش تنوعی رو که ایجاد میکنه بیش از حد مجاز. نوعی از تفکر رو ایجاد میکنه پس میشه احق و به انیوت تبع من این منت به جای کجاست؟ به جای اون من یهدی الالحق ام من لا یهدی نمیگه من لا یهدی من لا یهدی گوش میکنی؟ گوش میگه آیا خدا شایسته است خدایی که آیا خدایی که هدایت به حق میکند شایستگی دارد به تبعیتش شایسته تر شایستگی دارد به تبعیت یا کسی که لا یحدی الالحق نه هدایت به حق نمیکند لا یحدی الالحق لا یحدی الالحق یعنی چی لا یحدی خودشم خودش را به حق بودن نیس صالبانتما موضوع فاقد شی که به من ما موطی شی باشه اممن لا تدیه الى الحق نه لا يهدی. چون ممکنه یه موقع لا یهدی باشه یه نقاد هدایت داره خودش ولی کسی رو هدایت نمیکنه اینجا میگه آیا کسی که هدایت به هم می کند است به طبعیت یا کسی که خودش راه رو بگید برد نیست. نیست نه کسی که راهنمایی نمایی نمی کند گرفته چی میگم ایلا یهدی یهتدی بوده تا تبدیل به دال شده دال در دال ادغام یه ت دی یه تدی شده چی بگید؟ یه دی میدین چجوری شده؟ یه تدی یه تدی تا تارو تبدیل به دال کنید میشه چی؟ یه ددی بعد دال اولو ساکن کنید در دال دوم اتخاب کنید التقای ساکنه این میشه بین ها و دال بعد مجبور میشید ها رو چیکار کنید بگید؟ کسره بدید میتونید بنویسید دیگه یه ددی دا بعد دال ساکن کنید که اتغام کنید دیگه ها و دال دال اول افتغاست ساکنه میشه هارو رو به کسره میدن میشه یهدی نشد؟ امن ام لا یهدی بعد میگه امن ام لا یهدی الا انیه دا یعنی الا وقت انیه دا لا يهدي الا وقت ان یهده خب میگاه کنید لا یهده دی الالحق یعنی کل وقت الا وقت ان یهده هدایت شود بروس شد الا وقتاً بگیر یهده هدایت شرم. این میشه زر مزاق افتاده مزاقانه لکه بجاش جاش بگیر نشسته استثنان مفرد استثنان مفرقه فی کلمه وقته مستثنان بوده مستثنانه افتاده این وقتاً یهده استثنان شد استثنان مفرقه بلدی دیگه نه یا میگم این طور بوده لا یهدی الالحق دروشو به سببن الا به آن یقطن یعنی با حرف حرف جر شده این به سببن همون مستثنا به یعنی هدایت نمیشود هدایت نمی دارد. صاحب هدایت نیست به هم به هیچ سببی مگر به سبب هدایتی که بهش بده خدا هدایتی که بشه یعنی مخواد بگه اینایی که شما دارید اگر بعضشون هم مثل کی باشن مثل مثلا فرض بفرماید عیسی و عزیر رو نمید اینا رو خدا کنید ملائکه رو خدا کنید اینا بعضا بگید جزئه یختدی الالحق هستند ولی اینها بگو اینها لا یهدی الالحق راه به هدایت ندارن مگر اینکه بگو هدایتشون خب یعنی گوش کنید بزنید یه چیزی تو کلم من لا یهدی الالحق کیه بتها که هر کی میخواد باشه باشه حالا فرض کنیم بتها میگه این بتها هیچ کدومشون به ها حق مسیری ندارن یعنی اینا اصلا به طرف حق تمایلی ندارن راهی پیدا میکنن الا ان یهدا یعنی چی؟ مگر ای که هدایت بشن کی هدایت چون کنه؟ خدا یعنی اگر خدا بخواهد بگی اینا یعنی همه هدایت دست خداست نه نمیشن سالمین انتفای موضوعه یعنی خداوند اگر بخواهد اینا رو باید زندشون کنه شرایط هدایت بهشون بده بعد میتواند خدا هدایتشون کنه یعنی اینها به هیچ وجه من الوجودی بگو یعنی فرز محاله میگیم این راه به حق پیدا نمیکنه مگر اینکه خدا بخواد خدا بخواد چجور میشه این بوته زنده بشه خداوند او رو هدایت کنه هدایت بشه یعنی این در واقع الا ان یهدا میدونی چی رو میخواد بگه فقط خواست خداست سنگ و چوبم اگر یک زمانی بگو بخواهم باید اول افر خدا زندشون کنه بعد هدایت رو در وجودشون گرفتید الا ان یهدام فهمه میکنه ولی اولی من همیشه دوتا می‌نویسم دیگه اون اولی همیشه بهتر از دو فهمیه درست شد؟ یعنی اول بعد خدا چیکارش بکنه <تصفيق> اول بعد زندش کنه بعد هدایتش بکنه <تصفيق> هدایت مخصوص خداست هیچ کسی نمیتونه بیاد در هدایت دخیل بشه الا ان همون مطلب قبل خوب بعد میگه فمالکوم کیف تفهکوم خیلی رشنیا این فا فای نتیجه است بنابراین استدلال به این روشنی ما لکم. ما مبتدار لکم خبرش چه تونه آه؟ چه تونه تحکمون این کیف حال است از واب تحکم میگیم از چه لحا از این کیفه تحکمون استینابه میگیم واسه چی میگیم چه تونه آه؟ مثل که به یکی میگیم چه ته این چه ته یعنی داری پرد میریم آه متوجه نه چتونه چه, چه میکنین؟ بعد میگه آخر واسه چی؟ میگه واسه این که تحکمون چجوری شما حکم میکنین؟ یعنی چه چجوری حکم میکنین؟ یعنی داره حکم میکنین که این بوتها ما رو بگو خدا هستند و هدایت میکنن؟ عقل ندارین؟ کیف تحکمون چجوری حرفارو میزنین؟ نشد یا خیلی آیه است از لحاظ ساختاری و استدلال افه من یهدی. این افه اون فا نتیجه است نسبت به قبل بعد این فمالکم نتیجه است نسبت به این استدلالی که چه دونه چجوری این حق بارو میزنید کیفت و ما و ما يتبعوا و وما يتبعوا اكثرهم الا ظنن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله به ما این دیگه اصلا خدا جدا کرد یعنی دیگه با اونها بحثی نمیکنه داره مبحث مال میره وا وا به استنافی است انگار کسی سوال کنه چرا اینا افتادن دنبال بتها سوال این بوت که هیچ کاری ازشون بر نمیاد آدرسی نمیدن راهی نشون نمیدن چرا این آفتادن دنبال بوت میگه فمایت تبع و اکثر همه لازن نام نمی کند اکثر اینها مگر بگید گمان گمانه اینه که اینا خدا گمان اینه که اینا کاری میکنن گمانه باور ندارن. ما باور داریم خدا آفرینش انجام داده و داده باور داریم خدا هدایت میکنه و میکنه یقین داریم واقع شده اینو نه ما یتبا اکثر همه الله زنن اینا اکثرشون بگید، دنبال زنن شد؟ لا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ ان اِنَّزْزَن و گمان این از زن علفلامش علفلام عهد زکریه یعنی این گمانی که اینا دنبالش افتاده که گفتیم اینها دنبال گمانه این روی زن تاکید داشته نه گفته اِنَّهُ اسم ظاهر رو دوباره تکرار کرده علفلام عهد زکری آورده معلومه برای تویه نه عهد که برمیگرده به اون نکرهی قبل ان زنده لایقنی منل حق شیء حق ظن و گمان بنییاز نمیکنه ما رو از حق بگید چیز اینا به گمانشون افتادند دنبال این بحثا و این هیچ فایده ای بگید نسبت به حق ندارد گمان شما رو به حق نمیرسونه لایقنی منل حق شیء من الحقه متعلق به لا يو نیست شيئا مفعولا بهش اینجا حق منظور چیه؟ نه. نه. خب در مقابل ظن یعنی یقین. آها، علم ها؟ آه؟ لا تفهم ما ليس لك به علم. اونی که ما من الان گفتم ما باور داریم آه. میشه این یقین علم اینجا حق یعنی یقین میگه هیچ موقع زن بینیازی ایجاد نمیکنه چیزی رو در مقابله بگید یقین و حق هیچ لایق من نل حقه بگو شیان ان الله علیمون به ما یفعلون میگه بنابراین ما اطمام موجهت کردیم. گفتیم هم اینا دنبال گمانند فقط. اینالله علیمون به ما یفعلون. خدا علیم است به ما یفعلون. تمام کارهای اینها رو بگو. حساب کتابشو دارد. به ما یفعلون یعنی به ما یفعلونهو یا به ما یفعلون یعنی به فعله. ما مای مستریه باشه یا مای منصوله. ان اینالله هم استینافت بیانیه. ببینید. نگاه کنید. بعضی ها اومدن گفتن که مشرکین مشرکین در واقع به نوعی خدا رو هم قبول داشتن درست شو؟ به نوعی خدا رو هم قبول داشتن میگه لئن سهر هم من خلق السماوات و الارض لا نه الله ولی بت‌ها هم می‌گفتن اینا شرکای ما که خودمون خداییم شفاعای ما میگه اینجا خداوند داره میگه و ما و اکثر و هم الا زنن یعنی وما یتب و اکثر و هم اللهه الا زنن یعنی تو اون قسمتی که خدا رو قبول دارن در گمان باور نیست یعنی نمیخوایم این رو بگیم بلکه میخواد اصلا اعتقاد مشرکین بره زیر سوال. مشرکین یقین به این که این بودها کاری ازشون برمیاد، یقینه به این که اینها چیزی دارن هم. اساس اعتقاداتشون بر یقین بگید نیست بر گمانه بنابراین اونی هم که ملاک دارد علم است و یقین است و اینها از یقین هستند هستن این نزدن نلایغنی گمان هیچ فایدهی بگید ندارد خدا علیم است به کارهای. گرفته چی میخواهد بگه؟ میخواهد بگه اینها در رابطه با اون قسمتی که اعتقاداتشونه باورهاشون باورهای قلبی بگید باورهای قلبی نیست و ما یتبعه یتبعه فیلی مزاره ها اکثر و هم و ما یتبعه اکثر هم الا زن فقط گمان، هیچ این زنن مفعولون به هیت تبخستان زننن نکره آورده یعنی گمانی ناچیز یه خیال تبخومی ناچیز زننن نکره است. یعنی یه خیالکی تو ذهنشون ساختن دنبالش را افتادن و این خیالک و این گمان بگو هیچ کاری برای اونها انجام نمیده هیچ کاری در مقابل خداوند و یقینی که باید داشته روشن انجام نمیده. پس خدا آماده است که اینها بیان رو به کارشون رسیدگی کنه. چون این ولی و بالاتر اینجا اونی که ما در مقابلش باید داشته باشیم چیه؟ باوره، یقینه. متوجه شدی؟ اون باور و یقین رو ندارن باور و یقین نباشه دیگه بریز. اینجا گمانی که داره میگه در واقع به همون توهم و شک و همه اونها رو داخل نهایتش زنده. مجبش شدید میگه اینها باور ندارند، ما یتب و اکثر و هم درست شد یعنی ما یعتقد و اکثر هم ما یعمن و اکثر هم ایمان ندارن و اونی که نجات میدهد ایمان است پس بنابراین خداوند خداوند به حساب کتابشون میاد یعنی اینا که محل علو استدلال کردیم سر بودخاشون اینها نسبت به این بودها باور دارن با این شرایطی که بودخا دارن نه و ما یتبه و اکثرهم بعضیان گفتن که این و ما یتبه و اکثرهم درست شد در رابطه با اون تیکه‌ایه که اینها اقرار به خدا دارن یعنی اینها درون اون اقرارشون به خدا یقین ندارن لذا ارزش ندارد و خداوند اینها رو مشرک میدارد تیکه آخره یعنی چی؟ یعنی اینها از عبادتشون هیچگونه ای بگید نمیبرن چون اونی که بهره برده میشود یقین از تو خدا و خداوند حساب کتاب اینها رو خواهد رسید چرا؟ چون رسول فرستاده اتمام وجد باشون کرده نقط سرمت خب یعنی رسول فرستاده اتماع موجر کرده دیگه الان میرم به قرآن و ما کانه هازل حالا رسیدیم به این که گفتیم خدا هدایت میکنه خدا با چی هدایت میکنه با رسول با چی؟ با کتاب قرآن واقع استینافی است. ما کانه هازل قرآن ای هازا اسم اشاره نزدیک برای تعظیمه این قرآن عظیم و این قرآن این قرآن بگو افتراف نیست ما کانه هازل قرآن و انیفترا انیفترا خبر کانه است این کانه اینجا برای چیه؟ یعنی نبود قرآن افتراف؟ برای سبوته یعنی به یقین این قرآن افتراف نیست قرآن سبب هدایت اسباب سبب هدایت خداست. میگه این قرآن جای افترا نداره. ان یفترا مندون من دون الله. این من دون الله حال است از نای فاعل یفتر اون متعلقه به یفتراست. دون به منای غیره. حال بهتره. که میشه چی اون موقع بگو؟ ما کانه هازل قرآنو مفترن درست شده نه؟ یعنی این قرآن زده شده بگید نیست نسبت داده شده به خداوند به دروغ نیست در حالی که مندون الله در حالی که از جانبه بگو غیر خدا باشه نه این قرآن حق است و از جانب خداست شد انیفترا یعنی انیفترا ثابتن من غیر الله مرسلن من غیر الله موجودن من غیر الله افترا شده باشه در حالی که از غیر خداست ولیکن چیه استدراک میگه ولاکن تصدیق لذیب این یده و تفصیل الکتاب اینجا یه چیزی فهمیده میشه گوش کنید یه چیزی میگه ما کانه هاز القرآن انیفترامندون الله یعنی این قرآن افترای از جانب غیر خدا بگید نیست. یعنی به دروغ نسبت داده شده باشه از جانب خدا نیست افترا نیست این قرآن این ولکن این ادراکه دیگه میگه ولکن تسهیل از اینه یاده و, این ای و تفسیل از کتاب انگار یکی میگه این مفهوم بده اون چیزی که به غلط به ذهن میرسه لاکن دفعش میکنه چیه اینکه میگه این قرآن افترا نیست ممکنه یه نفر بگه خب پس پورات و انجیل و کتب دیگه چی بوده؟ افترا بوده الله، منق... دون الله گرفته چی شد یا نه؟ این به ذهن برسه دیگه میگه این قرآن با تحکیدم میگه کانم این قرآن محل افتراع از جانب غیر خدا نیست ممکن بود این به ذهن برسه که پس بناورین بگو به قبل افترای از جانب خدا بودن و رسولانشون هم مفتری میگه نه ولیکن کانه این تصدیقه خبر یک کانه مقدره ولیکن کانه تصدیق تصدیق یعنی مصدق مثل انیفترا که به معنای مفتراست این اینم به معنای مصدق ولیکن کان القرآن و مصدقن الازی. ولی این قرآن تصدیق گره الازی اون کتبی که بین یدگ خبر کن است؟ مشخص شد تصدیق الازی تصدیق به معنی مصدقه اضافه شده به الازی مفعولش ولی این قرآن تصدیق گره است مصدق است الازی کتابی رو که کتابی رو که بینه یده در مقابلش بینه یده یعنی استقل بینه نشود یا یه شد گرفتید لکنه معنیش چی شد گفید قرآن افترانیست بله احسن اونم مورد تاییدن این قرآن مصدق اونها هم بگید هست چون که صد آمد نوت هم پیش ماست ولکن تصدیق لذیب اینه ده ولی محضوفه دیگه بعد از لاکه به قلینه اون کانه قبل. خب. ولی مصدق کتب آسمانی قبلم هست یعنی این نیستش که ما بگیم این که قرآن افترا نیست یعنی بقیه افتراست اصلا نه بحث اون نیست این قرآن افترا نیست مصدق بگو یعنی کلام شما غلطه که میگید قرآن افتراست و تفصیل کتاب این و تبصیل کتاب این الکتاب کتاب رو باید باشه سنت آن شریعت آه دستور الهی تبصیل یعنی توضیح این قرآن تصدیق کتب آسمانی قبله و مفصله بگی شریعته سنت، دستورات الهی هر کتاب نشونده یعنی اون کتاب اون لوح محفوظ اون شریعت الهی این بگه تفصیل کتاب بود یا بعضی میگن از کتاب علفلامش علفلامه جنسه تفصیل کتاب یعنی توضیح درنده و کامل کننده کتابهای قبله همون چون که صد آمد نورد هم تفصیقه اونها رو میکنه و بگه تکمیل اونها رو میکنه و تفصیل نشد و تفسیل الکتابه وسط لحظه کتاب اومده تفسیر این اون نیست اینجا اون نیست تفسیر یعنی توضیح الکتاب میگه قرآن توضیح کتابه. حالا این الکتاب یعنی شریعت الکتاب یعنی سنت الکتاب یعنی دین الهی خب تفسیر دین خداست، دین اسلامه یا نه کتاب الفلامش الفلامه بگو جنسه یعنی کتاب آسمانیه بگید سابق مشخص شد کتاب آسمانیه سابق رو گفتن الان جلوی من این بحثه مرحوم تبرسی درست شد تو تفصیل خودش میگه که و تبیین ما شرع و فر زمین الاحکام الکتاب رو گفته یعنی المکتوب مکتوب یعنی چی؟ یعنی المفروض كتب علای کمستیام تفصیل الکتاب کتاب مستره به معنایه بگو اسم افعول یعنی المکتوب یعنی اونایی که بر شما بگو توضیح دنده واجبات شماست اون که بر شما بگید واجب شده شریعت سنت ان کتاب یعنی ال مکتوب یعنی یعنی تفصیل دین الهی رو میده احکام الهی رو بعضی‌ها گفتن تفصیل الکتاب کتاب کتاب الفلامش الفلام جنسی یعنی کتاب‌های آسمانی بگید گذشته تصدیق اونهاست و تفصیل اونهاست ها چون ممکنه به ذهن برسه که اگه تصدیق اونهاست پس این واسه چی اومده خب اونا بودن دیگه چی جواب میده بگو حکمیل کننده اونهاست ها؟ هدایت آخر الهیست نمیدونم فهمیدی چیچی گفتم چی یا نه خب لا ریب فی من رب الالمین لا ریب فی ریب اسم شفیه خبر برای لای نفی جنس من رب الالمینم یعنی ثابتم من رب الالمین این هر دوتا حالم هر دو تا بگید حالند لا نه ای حاله جمله حال من رب العالمین بگید جار و مجرور حاله یعنی ثابتن من رب العالمین نشد اینا حالند حال از برای کیان حال از برای کیه یعنی زول حالشون اینجا کیه؟ قرآن که؟ اون که اون آخره ما کنید ببینی حال هستند از زمیر داخل تصدیق و تفسیر حال باید در بیاد دیگه چون اینا به منو مصدق بودن یه زمیر توشونه که بر میگرده به قرآن این قرآن تصدیق جره کتب آسمانی قبله و این قرآن تفصیلگر واجبات شماست یا تفصیلگر شردنده کتب آسمانی قرد. در هر حال این قرآن مفصل و این قرآن مصدق لارعی وفی بگیر منربل افتراه نیست لارعی من منربل نشد یا شد اون زمیری که داخل تفصیل و زمیری که داخل بگید تصدیق این لارای بفی و من رب العالمین حال هستند دست <تصفح> <کیه؟ آه؟ تصفح> لارای بفی حال قرآن ازالکال کتاب لارای بفی خودن لعل متقین یعنی من رب العالمین این حدوتا حال است نظر فایل تفسیر و فایل تستیق یه چی می‌خواد درست شو مشخص چه نه پس زیاد چیزی که بخواهد به قول خودمون گیرمون بیاندازه اینجا نه ام این ام این ام ام منقطعه است ام چه چی چیه بگید منقطعه شعن قرآن رو گفت چیه شعن قرآن رو گفت چیه گفت شعن قرآن اینه که افترانیست تصدیق و تفسیل است تصدیق کتب آسمانی قبل تفصیل احکام و شریعت یا کتب قبله و هیچ شکی هم جای شکم نداره از جانب خداست این شعن قرآن بود که بیان کرد بعد میگه ام یقولون افتراهو این عم منقطعه عم منقطعه همه چی چی بگید منقطعه بهش میگن منقطعه به دلیل اینکه موعدش از نفسی از موعدش جدا است مثل این عم متصله نیست که ارتباط می‌کنه عم منفطه این 90 درصد به معنای بله است و همزه استفهام 90 درصد هم به معنای بله خالص میشه هر دو اینجا هست آ شد اگر بل همزه باشه به نظر تره یعنی قرآن ما که اینجوریه ام یعنی بل ا بلکه آیا یقولون افتراهو اون موقع چی میشه و همزهش همزه چی میشه انکار توبیخی انکاره بگید توبیخی یعنی بلکه آیا میگویند این افترا شده؟ افترا بسته پیغمبرینو به خدا؟ یعنی چی؟ یعنی همچین چیزی نیست امکار توبیخیه اگر کسی هم مدعیشه مثل اینها بگید دروغ میگه بعض اون گفتن همزه نمیخواد یعنی بلی یک قلونه یعنی بلکه اینها میگن بگید مطالب خب سر جای خودش مطالب قبل سر جای خودش بلکه اینها میگن که این افتراک کرده به نظر میاد که بل و همزه باشد یعنی قرآن ما اینه آیا اینها میگن که این افتراک هست انکار توبیخی یقولون افتراک هست یقولون فعل فایل یقولون فعل, فعل مزاره ها برده یعنی مرد زمونشون اینه که افتراک هست چه کرده؟ فیغمبر افتراب بسته شد قل قل آنه جواب میده قل بگو بگو به کی به همین که میگن افتراب دواز شد یعنی این کنتم صادقی نفی قول کن این فاره بهش میگن فایی فصیحه فای چی بهش میگن فای فصیحه که نشون میده یه چیزی قبلش بگید افتاده به قرینه قبل که اون چی ای گفتی شرط جمله شرط یعنی ان کنتم صادقی نفی قوله کوم ها ان نفی اگر شما راست میگید در این حرفتون و باور دارید این حرفتون رو که پیغمبر افترا بسته اگر در ادعاتون بگید صادقید فعتون شما نبیایید شما عرب نیستید شما مگه خودتون رو به گو صاحب سخن نمیدونید فعتو به صورت مثلگی شما می سوره مثلش بیاجید مثلی صفت سوره است مثل رسمهای متوکل در ابهام یعنی حتی اگر به معرفه هم اضافه بشه باز نکرده است لزوما مثلی صفت سوره شد شما هم یه سوره بیارید مثلی مثل قرآن در نظمش در شکلش در بیانش در تحدیه دیگه این ف گفتن فایده چی بهش میگن فصیحه. یعنی امکان کنتم نفی فی ادعائکم ود به صورت مثلی شما بیه صوره بیهدیم خب ود او خیلی تحلیقشون بیشتر میکنه. میگه یه صوره وردارید بیارید بعدم ود او من استتعتم بعدم صدا کنید ود او من استتعتم یعنی من استطعت هر کسی رو که قدرتش رو دارید میتونید مندون الله حال است از اون زمیری که افتاده هر کسی رو غیر خدا میتونید بیارید بیارید یعنی برای کمکتون ها یعنی ودعو یعنی فرا بخانید یعنی بخانید صدا کنید برا کمک کردن به شما نگره چیشو؟ چی شد یعنی شما یه سوره بیارید هر کی هم میتونید بگید بگید هر کی رو دلتون میخوادم یارجم کنید وقت او من استطعتم وقت او فیل و فایل من مفعول استطعتم یعنی استطعتمو هر کی رو میتونید در حالی که مندون الله هست بگید بیاد بسم الله بعد دوباره با این کنتم صادقین چه کارش کرده؟ مو... یعنی تحریکش بیا. یعنی این کنتم صادقین ففلو اگه راست میگیر انجام بدید چه وایسه دید قول فعتو به سورتن آن سورتن هم نکره آورده یه سورهی هر سوره مثلهی اما مثل قرآن باشه حکم بگه که این این قرآن است کپی برابر اصل بعد هم بعد او ما داریم میگیم هر کیم هم دلتون میخواد ازش کمک بگیرید اما در حالی که غیر خدا باشه چون خدا میتونه قرآن بیاره خدا رو بذارید کنار چون قرآن مال خداست غیر خدا هر کسی میخواد با شما هماهنگ بشه بشه از جن و انسرک درست؟ انکنتا ساده این جزای شرط شما از این بل بهش میگن چی؟ بل ازراوی یعنی بابا اینا نقطه سر قدر. یعنی مطالب قبل همه درست کامل ها؟ بل یعنی مطلب بعد رو بگیر اینو میگن م... نسبت مطلب قبل نقط سر خد مطلب جدید بل کذبو به ما لم یوهی تو به علمه آه. بل کذبو به ما لم تو به علمه یعنی چی؟ بلکه تکذیب کردن اینا چیزی رو که لم یوهیتو تو به علمه یعنی چی؟ احاطه نداشتن به علمش به یقینش به دانشش هیچی نداشتن یعنی چی رو تکذیب کردن اینا؟ قرآن رو پیامبر رو در صورتی که بگو هیچ چیزی نه همینطوری بیخود تکذیب اینها بر پایه و اساسی بگید نیست چرا بر پایه و اساسی نیست چون اگه بر پایه و اساسی بود خب اینا هم یه قرآن می آوردن دیگه پس معلوم پایه و اساس بگو ندارد به ما متعلق به کذبوس لمیوهی تو فیل و فایل به علمهی متعلق به لمیوهی تو احات به علمهی یعنی داشت علمشو داشت احاته علمی داشت ولم ما یعتهم تحویلوه یوا و و حالیه سان ولما یعتهم تعویلو الا لما فرقش با لم اون دفعه گفتم یادتون هست نه گیدم لما توش توقع هست انتظار هست لما یعتهم تعویلو یعنی چی یعنی هنوز تعویلش نیامده این نکته عجیبی ها نگاه کن جمله خبری رو چی معنا می جمله خبری رو کلام خبری رو میگن ما یحتبد و از صدق و کذب و لذاته دیگه کلام خبریونه که صدق و داره لذاته یعنی بدون اینکه قائل شده هر نظر بگیریم خود فرض کنیم احتمال صدق داره ولی قائل نظر بی اون قائل خدا این احتمال کذب نار واقعی شدونه خب این دیگه احتمال صده قائل بذارید که لاذاته یهتملو از صدق اول صدق چی بود صدق چی بود صدق در مقابله کذب دیگه صدق چیه میگن مطابقت سخن مطابقت سخن با واقع و خارج مطابقت سخن با واقع رو بگید خارج خب مطابقت سخن با واقع و خارج میشه صد عدم مطابقتش میشه چی؟ کسی اگر من بگم دیروز زید اومده بود اینجا شما میتونید صدق و کس من رو متوجه بشید چرا؟ میرین میپرسید دیروز زید اومده بود اینجا یا نه؟ میگن اومده بود یا میگن نه اومده بود صدق و کس بود بگم زید الان پشت دره بازم میتونید زید و من رو در زمان حال بگید متاجرم میرید که عربا میکنید زید پشت در هست یا نیست بگرد یا نگم فردا زید میاد شما الان میتونید به من بگید می دروغ میگه. نمیتونید بگید احتمال دارد باشه احتمال دارد ولی میتونید با قول خودتون بالانس کنید بگید مثلا اومدنش بیشتر احتمال کس احتمال, احتمال ولی نمیتونید به یقین بگید دروغ میگه. دروغ من کی معلوم میشه؟ برغا به شما نگار. اینم همینو میگه درست شد؟ میگه اینها کذبو تکذیب کردن به ما لم یوهی تو بهی معاد رو تکذیب کردن قیامت رو تکذیب کردن گفتن قیامت نیست ها؟ تکذیبش کردن که قرآن میگه قیامت هست که ما ثابت کردیم قرآن کتاب خداست و شما راست میگید بگید یه کتاب بیارید مثل این یه سوره بیارید قرآن رو تکذیب کردن کتاب رو تکذیب کردن معاد رو تکذیب کردن در صورت که ولما ما اته در حالی که هنوز وقتش بگید نشده که ببینن آیا راسته یا دروغه قیامت رو تکذیب کردن در صورت که هنوز قیامتی بگید نشده قرآن رو هم که ما ثابت کردیم که از جانب خداست پس وقتی قرآن داره میگه قرآن هم ثابت شده از جانب خداست ها؟ پس بنابراین هم باید بپذیریم اینا تکذیب کردن در صورت که ولمایت تعویل یعنی هنوز وقتش نشده نشده اینا تکذیبش کردن این ولما که گفته یعنی چی؟ یعنی تعبیلش میاد یادتونه گفتم لم نفیه گذشته است مگم لم یعت زیدون زید نیمده یعنی از این کلام بر نمیاد که زید میاد یا نمیاد ولی لما یادتون باشه گفتم توش توقع انتظاره یعنی چی؟ یعنی هنوز نیامده میاد گفتم مثل که اینجا مطب دکتر باشه منم منشیش نشستم شما هم همه نشستید منتظر من میرم تو و میام بیرون میگم لما احضورت طبیب لمای احضورت طبیب یعنی چی؟ هنوز نایمده منتظر باشید میاد این ولمایت هم تعویلوه یعنی هنوز قیامتش نایمده میاد یقینی هم هست چون قرآن داره میگه قرآن هم صدق هست چون شما نمیتونید بسلش بیارید حتما میاد ولی ها حتی عاقل بری نیستن که آینده ای که نیومده رو بگید. احتمالش رو بدن احمقا میگن نیست درست شده نه کذبو به ما لم تو به علمه ولما یعتهم تعویلو و هنوز نیمده میگه این کار ایناست کذالکه کذباللسین هم قبله کذالکه محبول مطلقه یعنی که تکزیبن کذالکت تکذیب تکزیبن کذالکت تکذیب. تکذیبی مثل همین تکذیبی که اینا کردن ها تکذیبی مشابه این تکذیب کذب اللذین من قبله یعنی استغربم من قبله کسانی که قبل از اینها بودن اونها هم تکذیبشون مثل همینا بود پای و اساس نداشت چون جزالکه مقول مطلق فنظر کیفه کان عاقبت الظالمی بنابراین فنظر این انظر یعنی تعامل کن فعل قلبیه نه نگاه کن ها درست شد افعال قلوبه کیف کانه آقبت و ظالمین این جمله محلم منصوب مفعول انظره بنابرا تحریق چون کیفه استفهام سرش هست کانه آقبت و ظالمین آقبت و ظالمین اسم کانه است. کیف خبرش مقدم شده به خاطر سره نگاه کن که آقابت ظالمین گذشته چش بود. تحمل کنن که آقابت ظالمین چیست فنزرو دیگه به اونها نمیگه فنزروها اونها از ندارن که بیش نمالی تحمل میکردن خود و قرآن رو میفهمیدن به پیامبر میگه فنزرو آقابت و ظالمین نگفته آقابت و هم اینجا وصفا برده مشخص شد یعنی آقبت سوء این ها به خاطر ظلمه به خودشونه. نشد یا نه؟ اسم ظاهر آورده جای زمیر باید بفرماید. فنزور کیفکانه آقبت و هم. گفته کیفکانه آقبت و ظالمی. نشد؟ خیلی باب استینافی هست. می و من هم من یعمنو بهی و من هم من لا یعمنو بهی و رب بکه عدم بل مفسدین بله این های ظاهرش اینه که راه رو نمیخواد بر اینها ببنده بر یعنی کذبو می میگه من, من هم یعنی چی؟ منو است. بعضی از اینها من کسانی هستن که یا منو بهی، ایمان میارم به خدا، ایمان میارم به قرآن، ایمان میارن به اسلام. یا منو بهی. یعنی به القرآن. و من هم من لا یا منو. بعضیشون هم ایمان نمیارن. خود این آیه دلالت بر اختیار میکنه که بشر مختل. میگه سرانجام این ها اینه خداوند داره میگه بعضی در آینده ایمان میارن بعضشون ایمان نمیارن و, و که علم و بل مفسدین پروردگارتو میدونه کدومشون ایمان نمیارن مفسدن تعبیر به مفسدین کرده خب یعنی علم و بل مفسدین ول مومنین دیگه رو وقتی مفسدینشو بشناسه مومنینشو هم بگی میشه می خدا میشنسه کدوم اینا ایمان میارن کدومشون ایمان نمیارن کدومشون در آینده مؤمن میشن کدومشون اسرار بر کفرشون دارن که تعبیر به فساد ازش شده این آیه گفت شد ایجاد میکنه شد خدا میشناسد مؤمنی روشونو میشناسد بگید یعنی اینها این آیه میخواد بگه اینها اختیار دارن ما به جبر کسی رو ایمان بهش نمی قبولانیم بلکه اینا ایمان دارن بعضشون در آینده ایمان میارن بعضی‌شون هم ایمان نمیارن بعدم تهدید کرده پروردگار تو اونایی که ایمان نیارن خوب میشناسه اونایی که ایمان بیارنم بگیر نه نه نه اون جمله به جمله من هم باز است، من لا یومم باز من خبره جمله به جمله حذف شده جمله اسمیه به اسمیه متوجه شد یعنی میگه چی میگه خدا مؤمنینو میشناسه کافری هم بگین اونایی که اصرار بر کفر هم میشناسه پس بنابراین بعضی ایمان میارن بعضی نمیارن ما ایمان رو اجبار نمیکنیم این یک مطلب بعضی ها این آیه رو اینجوری معنا کردن چه استدلالا گوش کن ببینید اون یکیش چی شد که ما ایمان رو اجبار نمیکنیم اینا اختیار دارن یه تعدادشون ایمان میارن یه تعدادشون ایمان نمیارن تازه اونایی که ایمان میارن رو خدا زودتر ذکر کرده و هم من یؤمنو ببینید یک تعبیر دیگه که هست اینه گفتم که و هم من یؤمنو و هم من لا یؤمنو یؤمنو بهی گفته این و منهم من یؤمنو یعنی استدلالات ما اینقدر روشنه حجت ما اینقدر کامله که منهم من یعمن بهی بهیفی قلبه بعضی از اینا توی دلشون بگید صد درصد ایمان دارن و یه حق میدونم خدا حق است در باطنشون ایمان دارن بعضی های دیگرشون هم بگید که ایمان ندارند، اینها اناد میکنند، با خودشون دارند میچنگن. یادتی چی میخوام بگم؟ یعنی بعضیها باطنشون بگیر، ایمان داره زبانشون ایمان نداره، چون استدلالات ما خیلی روشنه. بعضیهاشون باطنشون با خداست، اما با اون درگیرند یعنی با باطن خودشون هم بگیر. یه تفسیر تقریبا یعنی اینطور میشه من هم من یعمنو بهی یعنی لا یعانه بعضیشون یعانه دارد شد این یه مقدار دوره ولی بحث برمیگرده به اینجا که ما رو کردیم اطبا هم کردیم اختیارم دادیم قطعا در آینده یه تعدادی از اینا مومن میشن یه تعدادشون بگی مومن نمیشن خدا حساب کتاب اونایی رو که از راه به در و تو دست خودش داره آخرش هم تهدید کرده که حواسش به همه اینها هست وصلاً حالا نوی نه